استفاده و رهایی از ذهنیت ها و احساسات منفی مقاومت مقاومت‌های درونی شکلی از منفیگرایی در ذهن یا احساس است. هر منفیگرایی مقاومت است. در اینجا دو واژه هم معنا گرفته ایم. مقاومت و ذهنیت‌ها و احساسات منفی. منفیگرایی از تحریک شدن‌های جزئی شروع می‌شود تا خشم‌های شدید، از یک گرفتگی معمولی تا افسردگی شدید و خودکشی. مقاومت گاهی موجب دردمندی بدن عاطفی می شود. در این حالت، حتی یک وضعیت معمولی نیز ممکن است باعث منفیگرایی شدید مانند خشم، افسردگی و یا اندوه عمیق شود. نفس معتقد است که به واسطه منفیگرایی میتواند از واقعیتها بهرهبرداری درست بکند و آنچه را که میخواهد از آنها به دست بیاورد. نفس معتقد است، که از طریق منفیگرایی می تواند شرایط مطلوب خود را فراهم کند و یا اینکه شرایط نامطلوب را برطرف سازد. وقتی ناراحت هستی، ناخداگاه این باور را در خود می پرورانی که ناراحتی تو مؤثر است و با آن می توانی چیزی یا نتیجه ای را که می خواهی به دست بیاوری. اگر تو، یعنی ذهن، باور نداشته باشی که ناراحتی و عصبانیت هرベイ موثر است آنگاه دلیلی برای ناراحت شدن نداری واقعیت آن است که منفیگرایی هرگز موثر نبوده است و نخواهد بود منفیگرایی به جای فراهم آوردن شرایط دلخواه آن شرایط را از تو دورتر می کند. به جای برطرف کردن شرایط نامطلوب آن شرایط را فراهم میآورد تنها نقش مفید منفیگرایی فربهتر کردن نفس توست به همین دلیل است که نفس به منفیگرایی عشق میوررزد. همین که خود را با شکلی از منفیگرایی یگانه گرفتی دیگر نمیخواهی آن را رها کنی و نیز در اعماغ وجودت دوست نداری که دگرگونی مثبتی در تو اتفاق بیفتد. دگرگونی مثبت هویت تو را به عنوان آدمی افسرده خشمگین و غیر قابل انعطاف تهدید می کند تانگاه هر فرصت مثبتی را در زندگی خود نادیده میگیری انکار می کنی و یا آن را ویران میسازی این حالت بیماری شایع است منفی گرایی کاملا غیر طبیعی است منفی گرایی آلاینده روانی است بین مسموم ساختن و نابود کردن طبیعت و منفی گرایی عظیمی که در روان جمعی بشریت تلمبار شده است ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد هیچ موجود زندهای جز انسان با منفی گرایی آمیخته نیست هیچ موجود زندهای جز انسان به زمین سخاوتمند و مهربان ستم نمی کند آیا تاکنون به درختی ناشاد و یا گلی افسرده برخورده ای؟ آیا دلفینی را ای که دلش گرفته باشد آیا گرباغی را ای که بی شده باشد؟ آیا گربه ای را ای که بی خواب شده باشد؟ آیا پرنده ای را ای که از کسی یا چیزی رنجیده یا متنفر باشد؟ تنها موجودی که منفیگرایی را تجربه می کند وان را در شکلهای گوناگون رفتار عصبی بروز می دهد انسان است به حیوانات و گیاهان نگاه کن و از آنها درس بگیر پذیرش آنچه هست و تسلیم به لحظه حال بگذار آنها به تو بودن را بیاموزند بگذار آنها به تو یک پارچگی را بیاموزند یکی بودن، خود بودن، واقعی بودن بگذار آنها چگونه زندگی کردن و چگونه مردن را بیاموزند و این را بیاموزند که چگونه زندگی و مرگ را به یک مسئله یا مشکل تبدیل نکنی. من با استادان زن بسیاری زندگی کردم گربه ها حتی مرغابیان نیز به من درس های معنوی یاد دادند صرف نگاه کردن به آنها مراقبه است ببین مرغابیان چگونه آرام شنا می کنند. با خود در صلح و آشتی کامل به سر می برند کاملا در زمان حال حضور دارند بی مزاحمت زه هستند با وجود این گاهی دو مرغابی با هم جنگ می کنند. بعضی وقتها بیدلیل و بعضی وقتها شاید به خاطر آنکه یکی از مرغابیان به قلم رو مرغابی دیگر نفوذ کرده است، این جنگ گاهی فقط چند ثانیه طول می‌کشد. آنگاه مرغابی‌ها از هم جدا می‌شوند و در جهت‌های گوناگون شنا می‌کنند و میروند و با شور و حرارت بال‌های خود را چند بار به هم می‌زنند. آنگاه چنان آرام و در صلح و صفا شنا می کنند که گویی هرگز با هم نجنگیدند. وقتی برای نخستین بار این صحنه را دیدم ناگهان متوجه شدم که آنها با بال های مکرر مازاد انرژی بدنشان را تخلیه می کنند و بدینسان از جمع شدن و تبدیل آن به ذهنیتها و احساسات منفی پیشگیری می کنند. این بصیرتی است طبیعی آنها به راحتی از این بصیرت طبیعی استفاده می‌کنند زیرا در آنها ذهن نیست که گذشته را در خود ذخیره کند و آنگاه پیرامون آن گذشته برای خود هویتی بسازد آیا یک احساس منفی نمی‌تواند پیامی مهم در بر داشته باشد برای مثال اگر من اغلب احساس افسردگی می‌کنم این احساس می‌تواند نشانه آن باشد که خطایی در زندگی من وجود دارد و بدینسان مرا وادارد تا در وضعیت زندگیم به دنبال آن خطا بگردم و تغییراتی در زندگیم ایجاد کنم؟ بنابراین لازم است به آنچه احساسم به من می گوید گوش بسپارم و آن را به عنوان چیزی منفی کنار نگذارم؟ آری احساس منفی تکراری گاهی پیامی برای ما دارد همانطور که بیماری پیامی به ما می دهد. اما هر تغییری که ایجاد می کنی، چه در رابطه با کار خود، روابط خود، محیط خود، نهایتاً بزک کردن وضعیت زندگی توست مگر اینکه خاصگاه این تغییر آگاهی تو باشد منظورم از آگاهی حضور توست اگر به درجه‌ای از حضور رسیده باشی دیگر به ذهنیت‌ها و احساسات منفی نیازی نداری تا به تو بگویند چه خللی در زندگی تو واقع شده است اما تا زمانی که این گرایش ذهنی عاطفی منفی وجود دارد از آن استفاده کن از آن به عنوان علامت و نشانه‌ای استفاده کن که به تو میگوید بیشتر حضور داشته باش چگونه از ایجاد گرایش‌های ذهنی عاطفی منفی جلوگیری کنیم چگونه از شر آنها خلاص شویم فقط با حضور است که می توان از ایجاد ذهنیت ها و احساسات منفی پیشگیری کرد اما دل سرد نشو تا کنون فقط تعداد کمی از آدمها توانستند به ساحت حضور آگاهانه دست پیدا کنند گرچه ادعی به این ساحت کاملا نزدیک شدند من اطمینان دارم که به زودی تعداد انسان‌های بیدار و حاضر و آگاه بسیار زیاد خواهد شد هر وقت شاهد شکلی از منفیگرایی در درون خود بودی آن را شکست تلقی نکن بلکه نشانهای مفید بدان که به تو میگوید بیدار شو، از ذهن خود بیرون بیا حاضر باش. آلدکس هاکسلی رمانی دارد با عنوان جزیره. او این رمان را زمانی نوشت که به آموزههای های معنوی علاقمند شده بود. این رمان درباره آدمی است کشتی شکسته که در جزیره افتاده از همه جهان تنها مانده است، این جزیره تمدنی یکه دارد. ویژگی منحصر به فرد این جزیران است که مردمش همه عاقل و فرزانند. نخستین چیزی که توجه شخصیت این رمان را به خود جلب می کند. توتیهایی هستند که روی شاخه های بلند درخت نشستند و مدام تکرار میکنند توجه توجه، اینجا و اکنون اینجا و اکنون در ادامه داستان میخوانیم که ساکنان جزیره به توطی یاد دادند. که مدام این ها را تکرار کنند تا برای آنها یادآوری شود که باید در اینجا و لحظه اکنون ساکن باشند بنابراین هرگاه گرایشی منفی را در درون خود احساس کردی چه توسط عاملی خارجی برانگیخته شده باشد یا توسط عاملی مبهم که خودت نیز نمیدانی چه بوده است آن را صدایی تلقی کن که به تو میگوید توجه توجه اینجا و اکنون بیدار شو حتی یک تحریک عاطفی جزئی نیز مهم است و باید مشاهده شود در غیر این صورت واکنش‌های ناآگاهانی بسیاری در وجود تو تلمبار خواهد شد همانطور که پیش از این گفتم این گرایش منفی را می توانی به راحتی کنار بگذاری با دانستن اینکه این میدان منفی انرژی را نمیخواهی و این میدان منفی انرژی هیچ فایده ای برای تو ندارد اما اطمینان حاصل کن که این گرایش منفی را کاملا کنار بگذاری اگر نمیتوانی این گرایش منفی را کاملا کنار بگذاری فقط بپذیر که چنین گرایشی در تو هست و توجه خود را به آن معطوف کن در ضمن به جای کنار گذاشتن یک واکنش منفی می توانی خود را نسبت به کنش ها و علتهای بیرونی چنان شفاف کنی که وقتی آنها با تو برخورد می کنند از وجود شفاف تو عبور کنند بیان که اثری از خود در تو به جا گذاشته باشند. ابتدا با چیزهای کوچک و جزئی شروع کن. مثلا آرام در خانه نشستی، ناگهان صدای گوش خراش اتومبیلی را می شنبی. تحریک آغاز می شود هدف از تحریک شدن تو چه بوده است؟ هیچ پس چرا آن را آفریده ای؟ تو آن را نی ای؟ ذهن است را آفریده است تحریک شدن تو امری غیر ارادی خود به خودی و کاملا ناآگاهانه بوده است چرا ذهن آن را آفریده است؟ زیرا ذهن به این باور ناآگاهانه چسبیده است که مقاومتش که تو معمولا آن را به شکل ناراحتیها و ناخرسندی ها تجربه میکنی به طریقی میتواند این شرایط نامطلوب یعنی صدای گوش خراش اتومبیل را برطرف کند البته این وهمی بیش نیست مقاومتی که ذهن ایجاد میکند که در این مورد همان تحریک شدن و یا عصبانی شدن از صدای گوش خراش اتومبیل است بسیار ناراحت کننده تر از خود علت ناراحتی است. همه این وضعیت را می توان به تمرینی معنوی تبدیل کرد. احساس کن که شفاف شده ای بدون توده متراکم بدنت که مانع عبور نور می شود. اکنون اجازه بده سر و صداها و یا هر چیزی که موجب ناراحتی تو و برانگیختن واکنش‌های منفی در تو می‌شوند از شفافیت وجود تو عبور کنند مانند عبور نور از شیشه شفاف و پاک اینها دیگر به دیواری در تو برخورد نمی‌کنند و در تو نمی‌مانند همانطور که گفتم ابتدا با چیزهای کوچک و جزئی شروع کن صدای ماشین ها، جیغ و فریاد بچه ها، ترافیک سنگین خیابان. به جای داشتن دیوار مقاومت در درون خود که این الگوی غلط نباید چونین باشد همیشه و به طور دردناک به آن میخورد بگذار همه این چیزهای ناراحت کننده از شفافیت وجود تو عبور کنند و بروند کسی به تو حرفی ناخوشایند و بیادبانه میزند به جای خزیدن به واکنشی ناآگاهنه و منفیات مثل حمله، دفاع و یا انزوا بگذارست و بگذرد و برود و در تو نماند. دیوار مقاومتی در خود به پا گویی اصلا کسی نبوده است و نیز که تو را با حرفهای خود برنجاند. بخشیدن همین است. بدینسان سان تو دیگر شکننده نخواهی بود. البته اگر دوست داشته باشی می توانی به آن شخص بگویی که حرف یا عملش شایسته نبوده است اما دیگر آن شخص توان آن را ندارد که زندگی و حالات درونی تو را کنترل کند حالا دیگر تو ارباب وجود خود هستی برده دیگری نیستی و با ذهن خود هدایت نمیشوی مکانیزم مقاومت همیشه یکسان است چنگام شنیدن صدای گوش گوشخراش یک اتومبیل باشد و یا حرف و عمل یک آدم بی یا جاری شدن سیل وقوع زلزله و یا از دست دادن داراییها. من مراقبه های بسیاری داشتم در کارگاه های عملی مراقب شرکت کردم کتاب های زیادی درباره معنویت مطالعه کردم کشیدم تا در حالتی از عدم مقاومت درونی باشم اما اگر از من بپرسید که آیا آرامش حقیقی درون را پیدا کردم یا نه، پاسخ صادقانه من منفیست؟ چرا نتوانستم آرامش مذکور را بیابم؟ چه کار دیگری باید میکردم؟ تو هنوز در بیرون از خود جستجو میکنی و نمیتوانی از این حالت جستجو بیرون بیایی. مدام فکر می کنی. شاید کارگاه مراقبه عملی تازه بتواند تو را به مطلوب خود برساند باید به تو بگویم در جستجوی قرار و آرامش نباش به تعبیر مولانا جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد طالب حالتی غیر از حالت کنونی خود نباش در غیر این صورت در درون خود نزاعی میآفرینی و ناآگاهانه مقاومتی ایجاد میکنی. بیقرار بودن خود را ببخش. به محضان که بیقراری خود را کاملا میپذیری بیقراری تو تبدیل به قرار و آرامش میشود. پذیرش کامل توست که تو را میرساند نه جستجوی تو. معجزه تسلیم همین است. عدم مقاومت و عدم واکنش کلیدی است که به همه قفل‌های بسته می‌خورد. دو هزار سال پیش آموزگار بزرگ معنویت به طرزی سمبولیک گفته است. آن روی دیگر صورت خیش را نیز پیش بیاور. منظور او واقعیت درونی تو بوده است. نه صورت بیرونی زندگی تو. بانزان، یکی از بزرگترین استادان معنویت سالهای سال به دنبال روشن شدگی بود اما به آن نمی رسید. آنگاه روزی وقتی که مشغول قدم زدن در بازار بود گفتگوی یک قصاب با مشتری خود را شنید. مشتری گفت بهترین قسمت گوشت را می خواهم. قصاب پاسخ داد همه قسمت این گوشت بهترین هستند. هیچ قسمتی در این گوشت نیست که بهترین نباشد. با شنیدن این گفتگو بانزان به روشنی رسی میبینم که منتظری تا توضیحی بدهم وقتی تو آنچرا که هست میپذیری هر قسمتی از گوشت یعنی هر لحظه بهترین می شود روشن شدگی همین است